سلام می کنم خدمت شنوندگان کانال تلگرامی هزار افسان داستان های افسانه ای صوتی با کتاب افسانه های اوکراین در خدمتتون هستم داستانی را از این کتاب بهتون تقدیم می از بخش سوم قصه های اخلاقی و اسم داستان هست پدر خانده. به نام خدا روزی روزگاری سه برادر با هم زندگی می مدتی بود که پدر و مادرشون از دنیا رفته بودند و چون اون سه تا زندگی فقیرانه ای داشتند تصمیم گرفتند به شهر برند و برای خودشون کارو بار خوبی پیدا کنند و به زندگی خودشون سرسامونی بدن. پس بار سفر به سمت شهر رو می‌بندند و به راه میافتند. چند روز رفتند و رفتن تا در گذرگاهی با ریشی سفید و بلندی دیدند و بهش سلام کردند. پیرمرد از اونها پرسید کیستند و کجا میره؟ اونها قصد سفر خودشون رو برای اون پیرمرد توضیح دادند و گفتن الان که پدر و مادری ندارن بسیار مایلند که مرد خوبی پیدا بشو در حق اونها پدری کنه و به زندگی اونها سر و سامانی بده پیرمرد فکری کرد و گفت من میتونم پدرخوانده شما بشم و شما رو به فرزند قبول کنم و به شما کمک کنم که زندگی خوبی پیدا کنید، اما به شرط اینکه با حقیقت و خوبی زندگی کنید، تنها شرط من اینه. سه برادر قبول کردند و ازش تشکر کردند و با پدر جدید خودشون به راه ادامه دادند. رفتند و رفتند تا به خانه کوچک و تمیز و زیبا رسیدند که در زمینی پر از گل و درختان زیبای گیلاس ساخته شده بود. اونها محو تماشای اون منظره زیبا بودن که دختری به زیبایی گلهای بهاری از خونه بیرون اومد. یکی از پسرها گفت به چه دختر زیبایی همچون فرشته هاست. کاش از او خاستگاری میکردم اگر اون همسر من میشد میتونستم با اون تو این خونه زیبا و رویایی زندگی کنم و با داشتن این گافا و بوسفند ها روز به روز ثروتمندتر و منتر میشدیم. پدر خانده ای دانه و با تجربه به اون جواب داد باشد پسرم اینک به خواستگاری اون دختر زیبا و رعنا میریم اما یادت باشه که باید قول بدی در زندگی با حقیقت و محبت همراه باشی پسر قول داد اونها به خاستگاری رفتند و دختر قبول کرد پسر تو اون خونه موند و دو برادرشم هم همراه پیرمرد به سفر خودشون ادامه دادن رفتند و رفتند تا تو شهر و دیاری دیگه چشم برادر دوم به خونه ای بزرگ در کنار آبگیر و آسیابی زیبا افتاد. دید دختری بسیار زیبا و دلفریب تو اونجا کار میکنه. ما هم آرزو کرد که با اون دختر ازدواج کنه صاحب اون آسیاب بشه و کاروبار خوب و دست و پا کنه. پدر خونده به خواستگاری اون دختر رفت و برادر دوم هم به آرزوش رسید. پدرخوانده با پسر سوم به راه ادامه دادند و چند روز بعد در کناری جنگلی کلبهای ای و کوچیک دیدن که دختری زیباتر از ماه و ستاره ها از اونجا بیرون اومد. و برای جمع کردن چوب به جنگل رفت. دختر زیبا لباس مندرس و فقیانه ای داشت. اما زیبایی او مجالی به بیننده نمیداد که متوجه لباس رنگ رو رفته و کهنه اون بشه. پسر گفت ای کاش این دختر زیبا همسر من بشه تا با هم زندگی کنیم و زحمت بکشیم و به فقیرها و نیازمندا کمک کنیم پدر به خاستگاری دختر رفت و دست اون دو کبوتر عاشق رو تو دست همدیگه گذاش با اونها خداحافظی کرد و به سفر خودش ادامه داد لحظه خداحافظی به پسر خانده کچیک خودش گوش زد کرد که باید بکوشد و با حقیقت زندگی کنه سه برادر با زنای خودشون زندگی خوبی داشتند پسر بزرگ بسیار ثروتمند شده بود و گاو و های فراوون و سرمایهای چشمگیر داشت اما روز به روز خسیستر و تمع کارتر می میشد به هیچ نیازمندی روی خوش نشون نمیداد و کمک نمیکرد برادر دوم هم به ثروت کلانی دست پیدا کرده بود و خدمتکاران و رعیت فراوانی داشت اما او هم نیکوکار نبود و به کسی کمک نمیکرد اما برادر سوم با همسرش زندگی معمولی و ساده اما سرشار از عشق و محبت به دیگران و نودوستی داشت پدرخونده این سه پسر همواره در سفر بود از کشورها و شهرهای گوناگون دیدن میکرد و تجربههای فراوانی داشت بعد از چند سال سفر به این سوی آن سوی تصمیم گرفت به دیدن های خودش بره ببینه آیا با حقیقت و درستکاری زندگی کنند یا نه پس اول به دیدن بزرگترین برادر رفت در حالی که لباس درویشان پوشیده بود و چهره خودش رو عوض کرده بود. وقتی به درخانهی بسیار بزرگ اشرافی اون رسید در زد. پسر در رو باز کرد و پرسید چی میخواد؟ پدر خانده گفت پسرم مردی فقیر و بیمارم کاری در جهان ندارم از تو خواهش میکنم که به من کمک کنی دست کم نانی به من بدی چون بسیار بسی پسر بزرگ با خشم و بیادبی گفت پیرمرد من چیزی ندارم به تو کمک کنم من تازه به این ثروت رسیدم و برای اون زحمت فروونی کشیدم تو همه رو زحمت بکش و بیشتر از این مزاحم من نشو این رو گفت و در رو محکم به روی پیره بست از خونه اونها دور شد و نگاهی به اون انداخت ناگهان تمام خانه و آتش گرفت و خاکستر شد اون وقت به سمت پسر دوم رفت و از اون کمک خواست اما او هم با سنگدلی و بی‌احتنایی پیرمرد رو دور کرد و به اون کمکی نکرد پیرمرد با نگاهی زندگی اونم به آتیش کشید و رفت و رفت تا به خانه ساده اما زیبای سومین پسر رسید در زد و وقتی پسر مهربان رو دید ازش تقاضای کمک کرد و گفت پسرم بسیار گرسنه‌ام تکنانی من بده تو دعایت کنم پسر گفت خواهش میکنم پدرجان تکنان چرا بفرمایید و مهمون ما باشید هر چه داریم با هم میخوریم بدر داخل خانه شد زن جوان وقتی لباسهای کوهن و پاره اون رو دید به حال اون دلش سوخت و برای اون لباسی مناسب آورد و بهش داد تا بپوشه لحظه ای بعد زن متوجه شد که در سینه پیرمرد زخم عمیقی دیده میشه بعد از خوردن نهار از اون پرسید پدرجان زخم روی شما رو دیدم چرا زخمی شدید و چرا اون رو درمان نمی کنید؟ پدر خونده پاسخ داد زخمی عمیق و کهنه است که مرا به زودی میکشه. زن پرسید آیا درمانی نداره؟ پیرمرد گفت بله درمان داره و درمانش رو همه دارن اما کسی به من نمیده شاید هم حق داشته باشن که به من ندن. زن گفت شاید ما بتونیم به شما کمک کنیم و دردتون رو درمون کنیم. پدر خونده گفت اگه کسی خودش خونش رو بسوزونا کمی از خاکستر اون روی زخم من بریزه من از مرگ نجات پیدا میکنم. مرد و زن جوون که این فکر کردن و با هم دیگه به مشورت نشستن. مرد نظر زن رو پرسید و بهش گفت اگه خونه خودمون رو بسوزونیم باز میتونیم اون رو بسازیم اما این پیرمرد بمیره دوباره زنده نمیشه پس بچه ها رو از خونه بیرون ببرن با اونکه برای ساختن اون خونه بسیار زحمت کشیده بودن اون رو آتیش زدن خانه خاکستر شد اما ناگهان به جای اون خونه بسیار بزرگ و مجلل و شاهانه پدیدار شد زن و مرد جوان و کودکاشون با حیرت و شادی به خونه نگاه کردند و اشک شادی تو چشماشون حلقه زد. پیرمرد رو به پسر کرد و گفت پسرک عزیزم میبینم که در بین شما سه برادر تنها تو با حقیقت و معرفت زندگی کردی یا سعادتمند شدی؟ پسر ناگهان ناپدری خودش رو شناخت به سمت اون و اونو تو آغوش گرفت و ازش تشکر کرد اما پیرمرد ناپدید شد و دستان پسر که برای آغوش گرفتن اون باز شده بود همچنان خالی خالیمون سالهای سال پسر جوون با زن و فرزند مهربونش غرق در شادی و عشق زندگی کردند و هیچ وقت فقیران و نیازمندان رو فراموش نکردند اونها تلاش کردند که یک عمر با حقیقت و عشق زندگی کنند. کانال تلگرامی هزار افسان، داستان‌های افسانه‌ای افسان ای <متصفيق> نشانی کانال تلگرامی، T نقط می/ مهران دوستی، T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 .blackfall.com <متصفح> کانال تلگرامی هزار افسان به مدیریت محمد جواد دوستانی